اصل کارگاه کون و مکان این همه نیست باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست از دل جان شرف صحبت جانان قرض است قرض این است وگرنه دل و جان این همه نیست منک صدرب و طوباز پی سایه مکش که چو خوش بنگریی سر به روان این همه نیست دولت آن است که بی خون دلايت به کنار ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست پنج روزی که در این مرحله مهلت داری خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست بر لب بحر فنا منتظری می ساقی فرصت دان که ز لب تا به دهان این همه نیست زاهدی من مشو از بازی غیرت زنهار که ره از سومه تا دیر مخان این همه نیست دردمندی من سوخته زار و نزار ظاهرا حاجت تغریر و بیان این همه نیست نام حافظ رقم نیخ پذیروف ولی پیش رندان رقم سود و زیان این همه نیست